بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة و السلام على سيدنا و نبینا محمد و على عاله التجبين الطاهرين المعصومين لا سیما الله في الارضين اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته السلام على الأئمة الهدين المهديين السلام على جميع انبیاء الله ورسله وملائكته اجمعین السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على امیر المؤمنین السلام على الصدیقه الشهیده السلام على الحسن و سیدای شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبی السلام علی جعفر ابن محمد الصادق السلام علی موسی بن جعفر الکاظم السلام علی ابن علي موسی الرضا السلام على محمد بن علی الجباد السلام على علی بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علی الزکی الاسکری السلام على الهجیت بن الحسن القائم السلام عليك يا أبا عبد الله وعل الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغیت و الليل و النهار ولا جعل الله آخر لأهد مني لزیارتك السلام علي الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین قال الحسین عليه السلام صبرا علی قضائک یا رب لا اله سواک یا قیاس المستقیسین مالی رب سواك ولا معبود غیرک سبرن علی حكمك یا قیاس من لا قیاس لح ارز کردم که امام حسین علیه السلام در روز آشورا سه نوع گفتار و فرمایشات از ایشون برای ما باقی مانده. یک سخن گفتن با خدا در غالب دعا مناجات دو سخنانی که با خانواده و یاران و اصحابشون بیان فرمودن سه خطبه هایی که با دشمنان و سپاه ابن زیاد لشکر مخالف در مقابل بیان داشتن حقیقتا اگر ماها دقت کنیم وقت بگذاریم و بشکافیم همه این سنو فرمایشات حضرت پر از درسها برای امروز من و شماست یکی از اونها که امام علیه السلام با خدای خود سخن گفته در غالب دعا این عبارت است که از امام سجاد علیه السلام برای ما نقل شده که امام سجاد فرمودن پدرم روز آشورا یه گوشه خلوتی با خدای خود این گونه سخن میگفت و در مقابل دشمن هم ضمن اتمام و حجت با خدا باز این مطالب رو بیان پرمود که ابتداشو ما این چند شب داریم با هم بحث میکنیم صبرا الا قضا اکه رب. ما فعلا تو همین قسمت داریم با هم گفت و شنود داریم سبرن با توجه به بحث چند شب گذشته یک سبرن گفتیم انسان برای اینکه به نتیجه اینا شود به کمال انسانی برسد نیازمند به استقامت، ایستادگی و پای فشاری در دو جهت است. جهت اول موانعی که بر سر راه کمال و او قرار میگیرد استقامت کند موانع را از میان بردارد، شکست نخورد، خسته نشود، از میدان به در نرود. آنانی که این قدرت ایستادگی رو به خرج نمیدن، این موانع که در مسیر کمال اونها سر راهشون قرار میگیره، اونها رو میشکنه و به شکست وامیداره، میداره، اونها سیر تکاملی نخواهند داشت. جهت دوم، عوامل معثری که برای موفقیت و نیل به هدف لازم است چون زحمت دارد تقبل این زحمت و خرید مشکلاتش به جان صبر و استقامت می تلبند. آنانی که این استقامت و پایفشاری رو در رابطه با عوامل موثری که در رسوندن انسان به مقصد و هدف مؤثر است ندارند پس درجا زده و به نتیجه نمیرسد. لذا امام حسین علیه السلام در درخواستی که با خدای خود مطرح میکند یا شرایط حال خود رو بیان میدارد ابتدا با واژه صبرن وارد شده یعنی اگر در روز آشورا یک سلسله عواملی است که میخواهد مرا از آن هدف بلند الهیم که قرار به اون نائل بشم باز بدارد نه من ایستادگی میکنم و خم به ابرو نمیآورم و اگر یک سلسله عوامل است که من باید زحمتش رو به جان بخرم و تقبل کنم ایستادگی بخرج بدم من آمادگی دارم پس این در مرحله اول صبر که بحثش گذشت دوم الا قزا که بر قضای تو گفتیم قضا و قدر دو واژه‌ای است که با هم در فرهنگ دینی ما بسیار سرنوشت ساز و مهم در فهم معارف دینی و عمل و نتیجهگیری است که دو حالت مقابل هم و متزاد در معنای غذا و قدر در بین مسلمین و کلن متدینین در تاریخ ادیان حتی الهیات مسیحیت الهیات یهودیت هم مطرح بوده و دو برداشته یکی سهی یکی غلط در مقابل هم وجود داشته برداشت غلط این بوده که غذا و قدر یعنی یک حالتی که خداوند بر این عالم حاکم کرده و ما هیچ قدرت اراده و اختیاری در مقابلش نداریم و لذا چاره ای جز تسلیم بودن هم نیست و لذا اینگونه در عالم مقدر شده خدا خواسته حالا یا ما حکمتش رو میفهمیم یا نمیفهمیم مخصوصاً بنی امیه تاریخ گواهی میدهد بنی امیه بسیار تلاش داشتند که قضا و قدر رو اینگونی معنی کنند. وقتی معاویه اصرار داشت یزید رو به جانشینی خودش به مردم معرفی کنه برخی معترض شدن اینن عبارتی که از معاویه نقل شده اینه که خلافت یزید جانشینی یزید غذا اون من غذا الله خدا اینجوری خواسته این غذای است. وقتی که اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام رو به مجلس یزید در شام بردن یزید هم به طبع باباش میخواست مسئله غذا و قدر رو به معنی جبری بگیرد وقتی امام سجاد علیه السلام رو دید گفتن این کیه گفتن علی ابن الحسین گفتن مگه علی ابن حسین در کربلا خدا او را نکشت فوری امام سجاد علیه السلام قد بلند کردند و فرمودند او برادر من بود خدا نکشت لشکریان تو کشتند یعنی این را به جبر الهی نسبت ندید حالا این برداشت غلط که متاسفانه در عرف اکثریت حتی مسلمین رواج پیدا کرد پس غذا را با قدر به معنی جبر گرفتن دو شب توضیح دادم که این نیست غذا و قدر با هم یعنی قواعد قوانین نظام دقیق حکیمانه ای که حکیم عالم ذات اقدس الهی بر مبنای حکمتش بر عالم حاکم کرده بله قابل تغییر نیست این نظام عوض شدنی نیست این قوانین تغییر پیدا نمی کند اما نکته سومی که ما به این دو نکته اضافه کنیم استقامت و پای قضا غذا به معنی قوانین و قواعد حکیمانی ذات اقدس الهی که بر عالم حاکم است چه در مرحلی تکوین به عنوان غذا و سنت تکوینی چه در عالم تشریع به عنوان غذا و سنت تشریعی اما از همون غذا و قدر اختیار من و شماست یعنی همون قانونی که بر کل عالم حاکم است یک بخش از اون قانون یک بخش از اون غذا این است که ما اختیار و اراده داریم بر مبنای اختیار و اراده خودمون می با اون قضا و قدر الهی سنت الهی قوانین الهی خودمون رو بفهمدیم بدیم یا خدایی نکرده مخالفت ببرزیم که نتیجه اون وقت قطعی میشه یه سوالی موقع ورودم از طرف خانم ها به من دادن بسیار متشکرم که این ها رو می فرماین. فرمودن در بهار لنوار و مستدر و از حضرت امیر علیه السلام به کمیل در حدیثی فرمودن هنگامی که شیطان در تو وصفصه میکنه به بو عوز بالله لغوی با قاف به خدای قدرتمند منش شیطان لغوی با غینه از شر شیطان اقوا کننده و فریب دهنده و عوض بهی محمد من شر ما و قضا پناه میبرم از شر ما و قضا مگه قدر و قضا شر داره که باید به پناه ببریم چون به بحث رب داره من همین ابتدای ارائز جوابشو بدم ادامه بحث رو با هم پی بگیریم انایت بکنید شما در دعای ابو حمزه همتون خوندید الهی لا تعدبنی به عقوبتک این جز قضا و قدره قضا و قدر کیه؟ اگر شما یک گناهانی کردید یکی از اقوبتهای گناهان شما اینه که خداوند به وسیله اون عقوبت شما را ادب کنه شما میگه الهی لا تاعدبنی به عقوبته. یعنی خدایا کمکم کن. من اونگونه نشم که ادب شدن من با عقوبت تو باشه. ادب شدن من با انایت تو باشه. با مرحمته تو باشه. به این مثال دقت کنید. اگر شما شاگرده استادی باشید. استاد دو جور میتونه به شما تعلیم بده. یک تعلیم دوستانه پدرانه با محبت بر مبنای لیاقت و ظرفیت شما یه وقت میبینه شاگرد شیطونه شاگرد شیطنت داره شاگرد اونجوری که میخواد نیست میاد جریمه میکنه شیطانو. شاگرد رو یه نوع مثلا سختی برای این شاگرد آیا از باب عذیت شاگرده یا برای تربیتشه؟ این تعدیب با عقوبته حالا یه وقت هم هست لیاغت هیچیک از این دوتا رو نداره شاگرد. نه تربیت عالمانه حکیمانه با رحمت میشه. نه تربیت بر مبنای جریمه و قهر استاد. استاد میگه از کلاس بیرون کنید. سممون، بکمون، امیون، فهم این دیگه از کلاس رحمت الهی به کلی خارج میشه. که خدا نیاره که کسی به اینجا برسه. میگن حضرت موسی وقتی به کوه تور میرفت. یه بنده خدایی سر رو گرفت گفت سلام منو به خدا برسون و بگو خدایا گرفتارم یه انایتی به من بکن حضرت موسی عرض کرد و برگشت جواب آورد بر. گفت خدا چی گفت گفت خدا فرمود که حرف اون بنده رو نزن این به سجده شکر افتاد گفت که ببخشید گفت خدا فرمود این بنده من خیلی بده بهش بگو چرا انقدر بدی این به سجده شکر افتاد حضرت موسی پیغمبر خدا که میدونه ولی برای اینکه امثال بنده بفهمم پرسی چرا سجده شو کردی گفت خدا نگو ولش کن اصلا حرفش به من نزد همین قضیه که گبده معلوم به من توجه داره چشم یا نبی الله به خدا بگو توبه میکنم سعی میکنم خوب بشم حالا این قضا و قدر هست یا نه طبق بحثی که این چند شب کردیم بله یعنی سنت خدا اینه اگر شما از طریق درست ادب نشدید با عقوبت خدا ادب میشید حالا بگید الهی لا تعذبنی عقوبتک. نه یعنی خدایا منو ادب نکن با عقوبت ادب نکن با اونی که بهتر از عقوبت ادب کن حالا شر غذا و قدر یعنی قضا و قدر خدا اینه اگر شما مثلا اولادی دل پدر مادر رو شکست خیر نمیبینه این قضا و قدره ولی شما میتونید یه کاری بکنید پدر و مادر از شما راضی بشن. حالا اگر ش... اون شری که بر مبنای این قانون به شما میرسه، شر ذات غذاب و قدره یا شر رابطه اعمال شما با غذاب و قدر که شما سبب شدید این میشه دیگه پس از شر غذاب و قدر یعنی نکنه به اینکه این که من از اون نظامی که تو در این عالم گذاشتی مند بشم از همون نظام تو به وسیله نحوه عمل کرده خودم مستوجب عذاب بشم مستوجب شر بشم لذا در همین دعای ابو حمزه شما میخانید که امام سجاد علیه السلام به من شما یاد داده خیر و الهینا نازل و شر رونا ساعد کساید. که از تو به ما میرسه خیره. تو جز خیره. و قدر هم قانون خداست. خیر خدا برای من شماست. اما اینی که من باعث میشم که شر و بدی این از طرف منه. خب پس اولی صبر دومی غذاب و قدر و مشیت و سنت که توضیح دادم سومی اختیار ما که هماهنگ شدن با این غذا و قدر حالا چارمی که به صبرن الا قزا اکه که امام حسین به خدا عرض میکنه من در رابطه با غذا و قدر تو خب مسلمان در رابطه با من امام حسین و کربلاس داره بیان میکنه مثلا اگر فرض کنید که این الان بنده عرض می از قانون غذا و قدر الهیه که اگر کسی دل مادر شکست خیر نمی بینه حالا ما بگیم خدایا کمکم کن در این غذا و قدر موفق شوم یعنی چی؟ یعنی این برای بنده مطرحه برای شما مطرحه چه پدر مادرمون در قید حیات باشن چه از دنیا رفته باشن نکنه یه جوری عمل کنیم طبق اون سنت و قانون اونها از ما ناراضی بشن و این شر به ما برسه خب حالا امام حسین داره میگه خدایا صبر بر غذای تو در روز آشورا چی بود به این عمر چارون برمیگرده که دیشب پایان جلسه شروع کردم امشب با تکمیلش کنم تکمیل طبق قضا و قدر الهی یعنی توضیح دادم هی تاکید میکنم یعنی اون قانونی که خدا در این عالم گذاشته خب طبق این قانون و خدا در این عالم همه انسان ها اختیارشون رو به کار میبرند بشن سلمان فارسی اگه بود که ای کاشی همچو جامعه ای می داشتیم اللهم ارزقنا خیلی ها بد میشن خیلی ها آلوده میشن خیلی ها ظالم میشن خیلی ها ستمگر میشن این واقعیت های عالم وجوده حالا در این جامعه آنانی که خوبن پاکن و هرچی خوبی و پاکیشون بیشتر بود این مسئولیت که الان میخوام ارز کنم براشون بیشتر و سنگین تره کلکم و کلکم مسئولون عن همه تون مثل چوفانی هستید که نسبت به اون گله ای که در دستتونه مسئولیت دارید و باید نسبت به او مواظبت کنید همه حالا یکی در یک سطح یکی در سطح دیگر طبق این قانون خداوند که اگر در یک ای بدی زیاد شد آلودگی فراوان شد به ویژه بدترین بدی و بدترین آلودگی تحریف دین مسخ دین و حقیقت دین خدا را که عامل هدایت مردمه بد به خورد مردم دادن اینجا غذا و قدر یعنی قانون و سنت خدا در مورد خوبان چیست؟ یه روایت از امام صادق علیه السلام میخونم همتون آشنایید و میدونید ازا زهرت البدع فی امتی اگر بدعت در امت من ظاهر شد یعنی آلودگی های دینی حرام و حلال قاطی شدن فللیل ان یزهر علم. بر عالم، اونی که دانا و آگاهه، لازم است که علمش را آشکار کند و الا فعليه لعنت الله. و اگر این کار نکرد، لعنت خدا بر اوست. پس این جز قضا و قدر خداست. یعنی خدا مقدر کرده، آقا جون عالم شدی، آگاهی، اطلاعات داری، شما این شعر زیبایی که در فارسی از بچگی به ما یاد دادن و چه حرفای خوبی هم یاد می دادن شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است آقا دست توانا داری؟ شکرانش اینه که دست ناتوانه بگیری نگرفتی نظام الهی اینه که جریمه میشی کتک میخوری آقا میدونی بدعت وظیفت اینه که آشکار کنی حالا ممکنه فوش بخوری خب بخور ممکنه سیلی بخوری خب بخور ممکنه زندان بری ممکنه تبعید بشی ممکنه سرت مثل امام حسین بالای نیزه بره صبرا علا قزا یک صبر میکنم اگر غذای تو در این شرائط این است که من حسین که امام زمانم و ولی الله هم در میان خلق دارن با دین تو بازی میکنن طبق قضا و قدری که خودت معین کردی خب قرآن چی فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم ان حتا یغیروا ما بانفسهم خدا مردم رو عوض نمیکنه باید خودشون خودشون عوض کنن حالا این خودشون که باید خودشونو عوض کنن دو تا آیه از قرآن کریم امشب شاهد میارم طبق قضا و قدر و سنت پروردگار این خودشون باد خودشون عوض کنن یعنی چی؟ و این قاعده برای امام حسین در کربلا چگونه بود و به هر نسبتی که من و شما پیروب امام حسینیم در طول زندگیمون برای من و شما هم مطره نه اینکه فقط مال امام حسین بود تمام شد به همون نسبتی که من و شما پیرو امام حسینیم و امام حسین رو قبول کردیم این قائده و سنت خدایی برای من و شما هم مطمئه حالا این دوتا آیه رو دقت بفرمایید ولی سلوات میخواد سوره مبارکه بقره آیه 251 داستان تالوت و جالوت و داوود پیانبر و مفصل خودتون بخونید یه چی که یا آخر آید 25 که من می خوب دقت بفرمایید ولولا اگر نبود این اگر نبود یعنی چی؟ یعنی نظامی که خدا قرار داده ولولا دفع الله ناسب بعضه بأز به بعضن لفسدت الارزو اگر بعضی از این انسان ها بعضی دیگر رو دفع نمی کردن. مانع طاقت تازش رو نمی شدن جلوی اینا وای نمی استادن. با اینها درگیر نمی شدن لفصدت زمین فاسد می شد پس قانون خدا برای اینکه در زمین فساد گسترده نشود یکیش چیه؟ برگردیم به بحث یک شب و دو شب گذشته گفتیم قانون خدا در غذا و قدر تکوینی اینه که اگر انسان آب نخورد می میرد. اگر انسان هوا به او نرسد می میرد. اگر انسان غذا نخورد می میرد. این قانون الهی است خب اگر افراد با این مخالفت کردن خب میمیرند قانون خدا این است اگر بعضی انسان ها در صدد دفع بعضی دیگر که بدن و زشتن بر نیاین فساد زمین را میگیرد اینجا وظیفه اون بعضی که میتوانند به دفع بعضی دیگر برگردن هماهنگی با این قضا و قدر تشریعی الهی هست یا نه این قضا و قدر تشریعیه حالا دقت کنید و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض اگر نبود این قاعده که خدا اینجوری قرار داده و یه ادعی همیشه هستند یه بعضیایی هستند یه کسانی هستند که در این عالم به دفع بعضی دیگر برمیخیزن حالا این دقتهایی که برخی از مفسرین بزرگ مثل مرهوم علامه تبا تبایی رزوان الله تعالی علیه فرمودن من دیگه وارد بستش نمیشم فقط اشاره میکنم ایشون فرمودن چرا دفع فرموده؟ رفع نفرموده فرمودن رفع ریشهکن کردن و از بین بردنه دفع امر موجود رو کنار زدنه چون در جامعه بشری همیشه یه سری بدها هستند رفع بدی در جامعه امکان نداره بلاخره گوشا به کنار یه عده این بروز میکنه بدی ولی وظیفه دفعه حالا چرا دفاع نفرمود دفع فرمود اونم بازیه اینا دیگر اجازه بدید وارد نشن دوستانی که میخوان به المیزان و تفاسیر دیگر مراجعه کنن اما حالا اگر این ای که خدا قرار داده وقتی تو جامعه یه عده بد میشن، آلوده میشن، زشتی به که بدترین بدیها دین خدا را تحریف کنن، دین خدا رو مصق کنن، حقائقی که باعث هدایت مردمه باعث آلودگی او بشن، اینجا یه ای پا میشن، در دفع اون عده شرشون را از سر مردم کم کنن، اقدام میکنن، اگر این سنت خدا در عالم نبود لفسدت العرض زمین پر از فساد میشد ولاکن الله ذو فضل على واقعا یه دهه بحث فقط این عبارت آخر آیه داره ولکن الله اما خداوند ذو فضل فضل در حق جهانیان دارد من فقط با اشاره می خواهم رد شم. خب بخشی که دیشب امام رضا علیه السلام به یونسی بن عبدالرحمن فرمود شاعه خدا اراده خدا غدره خدا غذای خدا گفتیم غدره خدا و غذای خدا بعد از شاعه و اراده به چه معناست؟ آقا خدا میخواد ما همه آدمشیم. جبری نه اختیاری خب اختیاری اون چه تا قبل از اختیار من لازم مربوط به خداست یعنی چی؟ یعنی اگه خدا پیغمبر قرار نداد خدا امام قرار نداد خدا کتاب هدایت قرار نداد خدا عوامل ارشاد رو برای من معین نکرد ولو من اختیار دارم من میتونم هدایت بشم؟ مثال زدم اگر یه استادی سر کلاس به شاگردا بگه آقا جون شما باید بخواید که دانشمند بشید حرف درسته ولی کلاس نمیذاره درس نمیده کتاب نمیده جزوه نمیده کارهای آموزشی رو انجام نمیده بعد به شاگردا میگه مگه شما نمیده میگه ما که میخوایم؟ ولی اواملش رو برای ما فراهم نکردیم غذا و قدر فراهم کردن عوامل هدایت از طرف خداست اما هماهنگی با او اختیار ماست که اختیار به ما داده بقیه او انجام میده خب حالا اون چه خدا تا قبل از دخالت اراده من برای هدایت شدنه پیغمبر، امام، کتاب، عوامل هدایت خدا در این عالم فضل در لغت یعنی اضافی و زیادی زکات مال بدر کن که فضله رز را چو باقبان ببرد بیش دهد انگور سعدی میگه فضله رز این یعنی اون اضافه ها شاخهایی که اضافه است حرس می تا اینکه بار بده زکات مال بدرکن کن که فضله رز را چو باقبان ببرد بیش دهد انگور خب فضل یعنی اضافه خدا زو فضل خیلی اضافه بر اون عواملی که داره یعنی این قانون و سنت خدا را اونایی که در این عالم عملی می کنن اینا مظهر فضل اضافی خدا در این عالمند یعنی امام حسین علیه السلام که به دفع شر بنی امیه برخاست. دفعه بعض به بعض مظهر فضل خداست علاوه بر نبوت و امامت و کتاب و عوامل هدایتی الهی برای بشریت راه را هموار کند ولو به قیمت سرش بالای نیزه رفتن و وقت این غذای الهی را امام حسین باید روش استقامت داشته باشه میگه صبرن علا غذایک زو فضلن علال العالمین. این فضل خداست یعنی انایت اضافی آقا اختیار به شما داد پیغمبرم فرستاد کتابم فرستاد 124 هزار پیغمبر اومدن این همه اتمام و حجت کردن امیر امام حسن با شما اتمام و حجت کرد امام حسین این همه فرمایشات، ولی با وجود این شما گول خوردید یزید مسلط شد ولی فضل خدا باز قطع نمیشه فضلش چیه یه بعضیا رو قرار داده به دفع این بعضیا بر حالا این بعضیا کیانن اونایی که خودشون رو با این غذا و قدر الهی هماهنگ میکنن و لذا اون روایت معروف پیغمبر رو ببینید همتون حفظید من اسبه ولم يهتم به امور المسلمین علیه الصبه مسلم اگر کسی سر از خواب نوشین صبحگاهی بردارد و در سر عزم کار پردازی مسلمین نداشته باشد اصلا مسلمان نیست حالا امام حسین در یک شرایطی قرار بگیره ببینه همه ارزش های اسلامی واژگون شده همون گونه که خود حضرت فرمودند عز بلی به امه براء مثل یزید و علل الاسلام و السلام عجب اگر قرار کلکم را و کلکم مسئولونن رعیته حالا را جامعه شما امیر جامعه شما یزید باشه و علی اسلام السلام. دیگه فاتحه اسلام را بخونید اما اینجا چی؟ اینجا خدای قانون گذشته یه عده هکلیفشونه با اختیار نبل اجوار امام حسین اختیار داشت بگه نمیکنم ولی دیگه این حسین سارالله الله نمی‌شد. امام حسین نعوذ بالله میتونست بگه که دست به دست یزید میدم پول فراوانیم میگیرم یک کاخیم در مدینه برای من بسازن اونجا میشینم و با یک مثلا قدرت و شوکت ظاهری دنیاوی زندگی میکنم اما دیگه امام حسینی نبود که این به لازمی لازمه امام حسین در اون غذای الهی رو تو این عالم در اون ظرف زمان و مکان پیاده کردن صبر خب به هر نسبتی که ما پیرو امام حسینیم در دفع بعض ما جزو کدوم بعضیم اون بعضیم که باید بعضی دیگر ما رو دفع کنن پناه بر خدا یا ما از اوناییم که خدایا این مقدار توانستیم بدی بدیها رو در جامعه تو دفع کنیم با گفتن با نوشتن با بحث کردن، با عمل کردن، با جلسه گذاشتن، با محبت کردن به بدا و رفیق شدن از کانال رفاقت به آنها فهمندن راه بسیاری داره لذا این یک قاعده است. یه آیه دیگر هم اجازه بدید باز از قرآن کریم در این رابطه بخونم بعد عبارتی رو از امیر در نهج البلاغه که اینن همون عبارت رو امام حسین در رابطه با کربلا مجددن مطرح برمودن که در ارتباط با بحث ما سوره مبارکه حج آیه شماره چهل. اینم باز من اول آیه رو کاری ندارم میرسم از اینجا. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن اگر خداوند بعضی ها رو به وسیله بعضی ها دفع نمی کرد خداوند میگه. یعنی چی؟ یعنی قانون خدا. خدای قانون گذاشت. چون خدا گفتیم ان الله لا یغیر ما به قومن حتی یغی روما به انفسه اگه توی جامعه ی ای بودن که طبق این نظام پروردگار برخواستن برای دفع بدی بعضی ها که خدا مقرر کرده اینا این کارو کردند، کردن اگر اینجوری نشه ولولا دفع الله الناس بعضهم به, بعض، بعض به بعضن لحدمت سوامع و و بیعون و صلواتون و مساجدون یذکروا فیه الصلاحه دیگه معبدها مساجد اماکن مذهبی جاهایی که مردم به, به عبودیت خدا بر برمی... همه از بیراب چرا چون بعد اونجا فرمود فساد اینجا یه مسادیقی از فساد رو معین کرد. همون کاری که بنی امیه میخواستن در اسلام انجام بدن و آغاز کرده بودن. همین رو از بین میرفت. الله من يَنْسُرُهُ اونایی که خدا رو یاری میکنن خدا حتما اونا رو یاری میکنه. منظور از یاری خدا یعنی چی؟ یعنی پا قانون و نظام و قضا و قدر خدا رو در عالم عملی کنن قانون خدا چیه اگه یه عدی به دفعه عدی دیگه برنخیزن فساد جامعه رو میگیره به ی و مساجد و صومعه و اماکنی که ذکر خدا در درو گفته میشه همه ویران میشه و از بین میره حالا اگر کسی با این قاعده خدا همراه میشه خدا هم یاریش میکنه آقا یاری خدا به امام حسین بله کربلا قرار بود امام حسین شهید بشه. چون جز با این شهادت و جز با این مظلومیت و جز با این شکل در تاریخ امکان دفع خانواده بنی امیه نبود. اما یاری خدا چیه؟ از همون صدر اسلام تا به امروز بخصوص خصوص جوونای عزیز تو این 20 سال، 15 سال، ده سال اخیر رو که دیگه شاهدن بگم چه دست ها با چه بودجهها و با چه قدرت ها سعی کردن امام حسین رو محف کنن که یه نمونش داعش چه پولی در اختیارشونه، چه قدرت نظامی در اختیارشونه چه پشتوانه های اونها رو حمایت میکنن چقدر محورها ها در اختیارشونه چقدر سایت دارند. انقدر قویند که یه سایت ما رو در تهران که داریم ای حرفا رو میزنیم پخش میکنیم هر ماه دو ماه یه بار حکم میکنن دوباره ما کلی باید نیروز حرف کنیم و با باید چیزای دیگری. یعنی اینقدر قدرت و یه سایتی که چهار نفر یه گوشه حتی اونم تحمل نمیتونه. با همه این حرفا شما هر سال یاد حسین، نام حسین، ازاداری حسین گرچه بنده انتقاد دارم که باید شعارش با شعور تا ام باشه. فقط شعاری نباشه. اما در این سال به سال کمتر میشه یا بیشتر میشه. این نصرت الهیه. امام حسین برد یا معابیه برد امام حسین برد یا یزید برد امام حسین هدفش چی بود هدفش حالا میگم اون هدفی که خود امام حسین بیان کرد ببینید با این غذا و قدر الهی همراه شد نصرت الهی هم با او همراه شد من و شما هم به عنوان شیعه امام حسین چقدر با این غذا و قدر الهی همراهی میکنیم بعد ببینیم نصرت خدا چجوری با ما همراه میشه ولی الله من ینسره ان الله حق قوی عزیز خب قوی که ما تو فارسی هم میدونیم ولی عزیز یعنی چی عزیز قدرتمندی که شکست ناپذیر است خب هر قدرتمندی شما الان تو جامعه بشری فلانی از فلانی قوی تره ولی دست بالای دست بسیاره یکی دیگه پیدا میشه اون رو شکست مید اون قویی که شکست پذیر نیست فقط خداست و لذا عزیز فقط خداست قوی یا یونعزیز خیلی قدرت شکست نافه حالا تو خود تو به با او وابسته کردی من شبه شورا تو تهران بودیم به سال زدم بزن اینجا بگم آقا این لیوان بد برداشت نشه چون از این مثال ممکنه بد بدم برداشت بشه. ولی خواهش میکنم دقت کنید برداشت بد نشه این لیوان آب. خب فرض کنید یه اقیانوس بود. بنده این لیوان زدم تو اقیانوس آوردم بیرون. الان آب این لیوان با آب اقیانوس فرقش چی شد؟ این محدوده یه قطر خون به چه که توی میشه چی نجس. یه مختصر آلودگی تو این آب بیاد میشه چی؟ میشه آلوده. ولی حالا لیوانو بشککنیم. آب بریزه تو حالا خون بریزه توی این آب نجس میشه متصله با آب، دریاوی فراوان نشود تیره به سیل عارف که برنجت تنکا هستند. کسانی که به خدا متصل میشن تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیر خود را نب... یک نکتایت بگویم خود را نبین که رستی این هجاب بین خود و خدا را بشکنی. متصل به او بشین لذا در مناجات امام سجاد علیه السلام تو مناجات خمسه اشره مفاتیح بخانید قرب کمانیتی و لغا که قررت و اینی و وسلو که منانفسی وسلو منانفسی یعنی وقتی انسان با قوانین تشریعی الهی در مسیر حرکت الهی به آنجا میرسد که امام صادق اصول کافی حدیث غرب نوافل و فرائض از پیغمبرم نقل شده به جایی میرسد که چش میشه چشم خدا دست میشه دست خدا لزا راج امیر امیرالمومنین عین الله يد الله ازن الله لسان الله و دعای زیارت روز جمعه امام اس علیه السلامم السلام علیک یا عین الله الناظره مگه خدا چشم داره نه او مظهر دید خدا در این عالم مظهر قدرت خدا در این عالم چرا چون اونجوری که او میخواست این کرده لذا اون اونجوری که او میخواد اینو قرار میده اونجوری که او میخواست این کرده اونجوری که او میخواد اینو قرار میده خب او چه میخواست سبرن علا غذای حالا اجازه بدید این بیان رو من از نهج البلاغه خطبه شماره 131 فرازی رو مولا امیر بعد از اینکه جمعیت با ایشون بیعت کردن از خانه در آمد، علاز ظاهر، حالا حکومت و قدرت دست مولاست، هزغت فرمایشاتی دارن. دو خط از این فرمایشات، پاراگراف دوم این خطبه، که اینن امام حسین علیه السلام هست، بعد میخونم این رو بیان فرمودن چیه؟ ای خدای من، تو که میدونی؟ نهولم خدای من، نہ منن منافستا فی این همه من جوش زدم این همه قصه خوردم این همه داد زدم این همه گفتم مردم چرا اشتباه میکنید چرا وسیعت پیغمبر رو عمل نمیکنید چرا خلافت رو به اهلش نمیدید چرا چرا چرا این همه که من انجام دادم نبود به خاطر اینکه رقبتی به سلطه و قدرت به دلم لک زده بود حاکم بشم آخه اینا که خدایا تو که میدونی والله برای کوچکترین شاگردان مکتب علی اینا هیچ ارزش نیست تا چه برسه برای علی سلام الله علی تو خیمه نشسته در اوج قدرت ظاهری تو جریان جنگ سفین ابن عباس اومد دید آقا کپش وصله وصلدار رو داره وصله میکنه یا علی اخی چیه دیگه داری وصله میکنه یعنی که نمیشه پوشید بنداز دور فرمود ابن عباس چقدر میارزه؟ مثلا فرض کنید یه دره فرمود فرمود والله حکومت بر کل کره زمین برای علی ابن طالب از این کفش کنه بیارزشتره مگر حقی را به صاحبش برسانم لذا امیر المؤمنین. این همه جوش میزنه میخواد دفع بعض به بعض رو بگه آقا من تکلیف دارم من باید کسانی که سر راه بشریت قرار میگیرن نمیذارن دین خدا به مردم برسه نمیذارن دین خدا خوب شناخته بشه نمیذارن انسانها هدایت بشن من در اینجا با تکلیفم انجام بدم اللهم اینکه تعلم و نهولم لم کن لذیکانه منا منافستن فی سلطانن از روی اقبت و میل برای سلطه و قدرت و حکومت نبود و لال تماس من فضول الحتام و نه این که من اصرار داشته باشم که از این که امور بی ارزش چیزی گیرم بیاد و ولکن اما چرا دارم این همه داد میزنم فریاد میزنم ولکن ل نریدل من دینک معالم دین تو رو برگردونم سر جاش که مردم بفهمن تو پرانتز عرض کنم مرحوم شیخ مفید این عالم بزرگ جهان تشیع در عملیش نقل میکنه میگه زمان یه پیغمبری از پیغمبرهای گذشته توی حدیث نداره از امام صادق حدیث که کدوم پیغمبر بوده منم نمیدونم میگه زمان یکی از پیغمبرها یه آقایی پیدا شد به دروغ دعای نبوت کرد یه عیده‌رم گول زد یه عدهم پیرویش شدن بعد از مدتی منقلب شد پشیمان شد اومد به موریداش گفت آقا دروغ گفتم من پیغمبر نیستم پیغمبر حق اونه بعضی از مریدا برگشتن بعضی گفتن نه اشتباه میکنی پیغمبر هستی باقی بمان دید عجب اشتباهی کرد اینا حاضر نیستن حتی حرفش رو قبول کنم اومد پیش پیغمبر زمان آقا من اشتباه کردم من مخوام توبه کنم چه کنم خدا به پیغمبر زمان وحی پرستاد برو به این پیغمبر دروقو بگو اگر اونقدر ناله بزنی که بند از بندت باز بشه جدا بشه توبه نمیپذیرم مگر همه اونهایی که گمراه کردی هدایت کنی و اگر در گمراهی مردن زندهشون کنی هدایت کنی مگه حق دارید بندگان منو گمراه کنید مگه شوخی زلالت جامعه مگه گمراه کردن مردم از راه در کردن یک انسان ساده است لزامیر المؤمنین داره با خدا درد دل میکنه توی این خطبه خطاب به مردم خدایا تو میدونی من برای قدرت طلبی این کارو نکردم من برای ثروت طلبی دنیایی این کارو نکردم ولاک لنردل معالم من دینک برگردونم رد کنم معالم دین تو را و نزهرل اصلاح بلادک نه یه نکته در سرزمین تو اصلاح را آشکار کنم به اصلاح امور بپردازم فیعمن المظلومون من عبادک بندگان مظلومو تو را در امنیت قرار بدم و تقام المعطلت من حدودک اون حدود الهی را که در جامعه برای مردم معین کرده ای و این مردم برای تأتیلی رو اون اقدام کردن من اینا رو زنده کنم اینا برگرده سر جای خودشون عین این, این مطلب رو ما در یک خطبه ای از امام حسین علیه السلام داریم در توحفل اغول و سد و هفتاد مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد نوود و هفت صفته هفتاد و عقل می که امام علیه السلام قبل از این که حرکت کنند به طرف کربلا خطبه خوندن صحبتی با جمع کردن این همین این یه چی کم اضافه کردن قسمت اول الله هم اینه که تعلم این نهولم يكن ما كان من تنافسا في فی ولا ولال من فصول الهدام ولکن للله در معالم من دينك و نزهال في فی بلادک و من عبادك ابد ادامش شو فرمودن و یو عملو به و سنتک و احکامک در واقع اون حدود معطلر رو حضرت با این بیان توضیح دادن تا عمل بشه طبق فریزهی که تو معین کردی تا سنت و احکام تو در جامعه مورد عمل مردم قرار بگیره و اون عبارت معروفی هم که همه میدونید دونید امام حسین به برادرش محمد عنفیه بود وقتی که خواستن حرکت کنن به سمت کوفه وسیعتنامهشون رو نوشتن دادن به برادرشون محمد حنفیه اون عبارت معروفی که همه میدونید که منابع بسیاری نقل کرده من جمله از اهل سنت مقتلال حسین خارزمی جلد یک صفحه 188 اینی لم اخرج اشرن ولا بترا من خارج نمیشفم قیام نمی کنم. حرکت نمی کنم. برای شرارت یا بترا برای سرمستی و همچین یه مقدار هواپرستی که حالا دلمون میخواد ما, ما پشیم یه سرسدایی کنیم نامی از ما پخش بشه یه چیزی همی بسد گیر ما بیاد آقا دیگران خیلی خوردن ما نخوردیم حالا ما پوشیم یه کم ما بخوریم دیگه نوبت ماه نعوذ بالله اینی لم اخرج اشرن ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالما من برای این که فسادی ایجاد بشه این کاری نمیکنم. من نعوض به الله برای این که ظلمی کرده باشه انما خرج تو لطلب فی امت جدی من خارج شدم در امت جدم اصلاح صورت بدم را به سیرت جدی و عوی اریدان آموره بالمعروف و انها ان المنکر و را به سیرت جدی و عوی من میخوام اصلاح کنم پس اینجا سنت خدا و قضا و قدر الهی که امام حسین داره میگه سبرن علا قضایک چی شد؟ دفعه بز به بز چی شد؟ اگر در یک جامعه بدی به حدی رسید که خوبان ساکت بمانند بدی اون بدها به گونه ای در جامعه رواج می یابد که سنت غلط می شود بدعت می شود امر بر مردم مشتبه می شود خلاوند علاوه اینو دقت کنی به این نکته آیه خداوند علاوه بر اون که پیغمبر فرستاده امام قرار داده کتاب قرار داده همه عوامل هدایت و فراهم کرده زو فضل است اضافه میکنه اضافه چیه؟ یک انسانها ایراکه مظهر هدایت خدا بشن برای حفظ دین خدا و روشنگری به دفع اون بعضیها ها برمیخیزن اما این برخواستن برای دفع اونها بسیار سخت است که صبر لازم دارد و لذا امام حسین اول صبرش رو مطرح کردند بعد غذا رو بعد رضا رو که اگر انشالله ادامه فرصت شد برسم بهش صبرن علاق نه سبرو میکنم چه صبر در عوامل بازدارنده هیچی نمیتونه جلو منو بگیره لذا امان سامانی در اون شعر بسیار بسیار زیبا و جانانش نسبت به این مطلب در رابطه با حضرت علی اکبر چه خوب اومده میدون میگه وقتی که حضرت علی... اولین شهید از بنی هاشم علی اکبر سلام الله علی چه شخصیتیست نمیفهمم وقتی امیر امام حسین علیه السلام امام زمانش بگوید اشبه و ناز خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله یعنی هر فضیلتی بگی برای علی اکبر هست حالا آقا یه پدر سال‌ها زنج برده یه پسر لایق شایسته ای رو تربیت کرده حالا میبینه هر کی میرسی تو سر پسر میزنه نه چون پسر منه به عنوان اینکه یه این نیروی به درد بخوره دلش به درد نمیاد یه معلم میگه یه عمر خونه دل خوردم یه شاگرد تربیت کردم این امید منه که بعد از من راه من فکر من مسیر من رو توی جامعه پخش کنه حالا ببینه این رو میآزارن این عذیت نمیشه حالا امام حسین میدونه علی اکبر یعنی چی می میخواد می بره میدان و میدونه الان بره میدان کینه‌ای هم که این مردم با امیرالمؤمنین دارن میخوان روی علی اکبر خالی کنن لذا اربن اربا میکنن همینا معلومه حالا هر کی اومده با امام حسین خداحافظی کنه امام حسین تول داده معتل کرده تا علی اکبر اومد برو بابا عمان چه خوب فهمیده چرا عمان خوب فهمیده بیش از این بابا دلم را خون مکن زاده لیلی مرا مجنون مکن. گه دلم پیش تو و یه پیش اوست رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست یا دلم پیش تو گه پیش اوست رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست صبرن ببینید چه صبریه صبری که ملا شما تو زیارت ناحیه مقدسه نمی خونید امام اص خطاب به امام حسین ملائک آسمان از صبر تو به تعجب آمدند حسین جان که این چه صبرن علاق قزا غذا چیه بله حالا اگر بارها بنده شاید این عرض کرده باشم وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها آمد اون خطبه قضایی رو خطبه پدکیه رو خوند و اون قزایا رو دید و اون جبر رو دید و بعد اون شراایتی که پیش اومد برگشت خونه که دیگه تو خونه نشست و از خونه خارج نشد قریبه به مضمون ارز میکنم. اومد خونه چی کار کرد؟ حسین رو بغل کرد زیر گلوشه بود <تصفح> <تصفح> یعنی چی؟ یعنی مادر؟ این امتی که من دیدم. این مردمی که من دیدم. خودتون آماده کن. زینب رو بغل کرد نوازش کرد. یعنی دخترم خودتو برای اسارت آماده کن. بله اون خط مقابل بدان هر چه خواستن بدی کنند کردن اما خط اینور چی؟ خط اینورم هم گفتن ولولا دفع الله ناسب بعضه هم به بعضه حالا اون بعضی یک نمونه بارز این بس کربلا جانم به فداید یا حسین چه کردی؟ آقا کوفه امیر رو دیده دقت کنین نزدیک چهار سال مقر حکومت علی بوده چجور آدمی؟ میگه هوای گرم تابستان کوفه مشرب شدید دیدید آفتابش چجوریه؟ اومدم از کنار خانه امیر المؤمنین بشم دیدم آقا پشت در تو کوچه نشستن گفتم آقا هوا گرمه سن شما بالاست عذیت میشید فرمود من خلیفه مسلمینم اگه مردم با من کار دارن پشت در معطل نشن اگه نمیتونم تحمل کنم نباد خلیفه مسلمین بشم اینو دیدم ابن عباس اومدی دید یه انبانی آوردن جلو علی لاکمه شده است گو چی تو این انبانه کلاک مهر نگاه کردم دیدم مولا لاکمهرش شکست نون خشکی توش در آورد یک کاسه آبم جلوش با یکی نمک این نونو میزنه رو زانو میشکنه تو این آب میزنه با یک کمی نمک میخوره دلم سوخت گفتم آقا پیرمرد شدید این چیه میخورید آخه این چیه که لاکمهرش کردید گفت ابن عباس من خلیفه مسلمینم وظیفه خلیفه مسلمین اینه که مثل فقیرترین افراد زندگی کنه به خدا قسم اگه میخواستم بهترین مغز گندم و اصل مصفا تحییه میکردم ولی علی چگونه میتونه اینگونه زندگی کنه خودش خلیفه مسلمین بنامه اما در دورترین منطقه حکومت او افرادی نان خشک بخورن گفتم چرا لاکمور میکنید پرمود این دلشون برای من میسوزه نکنه یواشکی خورش اینا رو دیدن تو کوفه علی این گونه بوده اسبا مردم داره عمل میکنه حالا زن و بچه عبا عبدالله رو وارد کوفه کردن آقا در دوران حکومت علی در کوفه زینب سلام الله علیه ها کلاس قرآن در کوفه داشته مفسر قرآن برای زنهای کوفه بوده یه وقت تو کوفه باران نیومد اومدن به امیر گفتن آقا نماز باران بخانید فرمود به حسین بگید بخانه حالا خود امیر هست، امام حسن هست نه میخواد به این کوفه بفهمونه که این حسینی که نماز باران خوند باران باری وقتی زن و بچهش آوردن کوفه باران سنگ رو از پشت بامه به سرشون ریختید برای تحقیرشو نان و خرمای صدقه پخش میکردن یه وقت صدای زینب از بالای ناغه از توی کجاوه بلند شد آی مردم پست کوفه میدونید دارید چه میکنید یه دفعه جمعیت دیدن صدای علی پخ شد این کیه داره این گونه سخن میگه دیدن زینبه اومدن به ابن زیاد گفتن ابن زیاد اگه زینب ادامه بده به خطبهش مردم کوفه قیام میکنن چه کنیم هیچ راهی برای ساکت کردن زینب نداریم سر بریده حسین رو ببرید روی زینب از عصر آشورا که با حسین فدا بدا کرده دیگه حسین ندیده یه وقتی سر موریده ابی عبدالله روی معولشه حرفش عوض شد شروع کرد با سر درد دل کردن دختر خردسال ابی رو زانوی عمه نشسته متوجه شد حرف عمه عوض شد عمه جان با کی داری صحبت صلى يا يا الله يا رسول الله يا الله يا Inna ta ba jannah wa wa ta ba sallab allah wa qadma la kabi yaday haajatna ya ba Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allahumma bismik ازل جل الکرام بمولانا صاحب الزمان یا الله یا الله یا الله، یا رحمن، یا رحیم، یا مغلب القلوب صمت قلبي على ذينك وكفنا يا غازي العاد ويا كافي المحمد انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين یا من از هرال جمیل و یا من يا من لم يا خزب الجريرا يا من لم يتكسر يا زين مالف يا حسنات ساجوز يا واسع المغفر يا واسع اليدين بنات يا يا صعب المواب السنيا نجاثنا من ك يا سيدي الكريم نجنا و خالصنا به ذب بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب مزتر از آدال و فس یا مجیب دعوت المزترین، بکن آموزترون و یا غیاسال يا يو الله الله يا حميد وب محمد يا علي به يا فاطر بانفاط ما يا محسن بان الحسن یا غدیم الهسان بحنگ الخسین و تسعت المعصومی من زریت الخسین اللهم عجل ولی کالفراج اللهم عجل ولی کالفراج اللهم عجل ولی کالفراج واجعلنا من انصار هي اللهم انصر من نسر الدين واخذ من خزل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعل الله بين وجعل غانمين اللهم اجعل اباقى امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وسانا بالدعاء خدایا همکنون دستهای که به سوی تو دراز شده نا بر مگردان دان رب الهوسین به عنق الهوسین صدر الهوسین به ظهور يا رب اش صدر الهوسین به ظهور الهجّا و الله فرج مولانا صاحب السلام عليكم يا ابو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار ولا جعله الله خر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته اللهم صل على علي بن موسى الرطبة الامام التقيه النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحتها الصديق الشهيد صلاتا كثيرا توم ما عن مترادفة، المتواصله متواتره مترادفه كاول ما صليت على احد من اولياك السلام عليك يا مولاي یا علی ابن موسیعی و حرق و رحمت الله و برکاته السلام عليك یا حجت الله سلام عليك یا بقیت الله سلام عليك یا صاحب الاسر و الزمان اجلالله تعالی فرجک الله مقرجک سلام عليك و علی آبای کتاهرین و رحمت الله و برکاته الفاتحة مع السلوات